دنیا به زنانی نیاز دارد که قویند زنانی که دیگران را بالا میبرند، نه آنها را خورد می زنانی که وقتی در کنارشان هستی حس میکنی میتوانی بهتر باشی بزرگتر فکر کنی و خودت را باور کنی دنیا به زنانی نیاز دارد که می سازند نه میسزند. که دست دیگران را میگیرند، حتی وقتی دستان خودشان زخمی زنانی که عشق را از سر نیاز نمی ولی از سر فراوانی دلشان میبخشند دنیا به زنان نیاز دارد که با شجاعت زندگی میکنند زنانی که از رنج نمیترسند چون میدانند هر درد دنیایی دانه ای از روش در دل خود دارد زنانی که به قدر کافی لطیفند تا ببخشند و به قدر کافی سخت جانند تا دوباره برخیزند دنیا به زنانی نیاز دارد که میدانند چه کسانی هستند نه آنچه جامعه دیگران و طرزهایشان از آنها ساختند زنانی که صدایشان را پیدا کردند و از بکار بردنش نمی‌ترسند زنانی که به جای رقابت الهام می‌بخشانند به جای قضاوت درک می‌کنند و به جای نفرت عشق می‌ورزند چنین زنانی جهان را آرام و در عین حال نیرومن تغییر می‌دهند نه نبا فریاد بلکه با حضورشان آنها یادآور می‌شوند که قدرت واقعی گاهی فقط در یک لبخند خسته اما هنوز مهربان پنهان است امروز 22 مهر 1404 و من خیلی خوشحالم شما به دنیا اومدی و مربی من قشنگ ترین مهزای دنیا تولدت کلی مبارک تولدت مبارک مهسا جان استاد تولدت مبارک تولدت مبارک مهسا جان تولدت مبارک مربی عزیزم شریفی خوشگلم تولدت مبارک هممون باشه امیدوارم که تو سال جدید زندگیت هر روز بیشتر از دیروزت بخندیم شریفی کنم تولدت کلی مبارک خیلی دوستت دارم ماش ماش تولدت مبارک مربی قوی و دوست داشتنی محزه جون تولدت مبارک تولدت مبارک استاد شریفی مرزی که هستی